مسنوی معنوی مولوی برنامه یک شکایت آن گاو که تنها در جزیره است بزرگ حق آن جزیره بزرگ را پر کند از نبات و ریاهین که علف گاو باشد تا به شب آن گاو همرا بخورد و فربه شود چون کوه پاره چون شب شود خوابش نبرد از غصه و خوف که همه صحرا را چریدم فردا چه خورم تا از این غصه لاغر شود همچون خلال روز برخیزد همه صحرا را سبزتر و انبوختر بیند از دی باز بخورد و فربه شود باز شبش همان غم بگیرد سال هاست که او همچونین می بیند و اعتماد نمی کند یک جزیره سبز هستند در جهان اندرو گاوی است تنها خوشدهان جمله صحرا را چرد او تا به شب تا شود زفت و عظیم و منتجب شب ز اندیشه که فردا چه خورم گردد و چون تار مو لاغر ز غم چون براید صبح گردد سبز دشت تا میان رسته قسیل سبزو کشت. اندرفتد گاو با جو بقر تا شب آن را چرد او سر بسر. باز زفت و فربه و لمتر شود. آن تنش از پیه قوت پر شود باز شب اندر تب افتد از فضع تا شود لاغر ز خوف منتجه که چه خواهم خورد فردا وقت خور سالها این است کار آن بقر هیچ ننده که چندین سال من می خورم زین سبززار و زین چمن هیچ روز کم نیامد روزیم چیست این ترس و غم و دلسوزیم باز چون شب می شود آنگاو زفت می شود لاغر که آوه رزق رفت نفس آن گاو استو، آن دشت این جهان کو همی لاغر شود از خوف نان که چه خواهم خورد مستقبل عجب لوت فردا از کجا سازم طلب سالها خوردی و کم نامد خور ترک مستقبل کن و مازی نگر لو تو پوت خورده را هم یاد آر من گرندر غابه رو کم باش زار سعید کردن شیر آنخر را و تشنه شدن شیر از کوشش. رفت به چشمه تا آب خورد، تا باز آمدن شیر جگر بند و دل و گرده را روباه خورده بود که لطیف تر است. شیر طلب کرد دل و جگر را نیافت. از روباه پرسید که کو دل و جگر؟ روباه گفت اگر او را دل و جگر بودی، آنچنان سیاست دیده بود آن روز و به هزار هیله جان برده کیبر بر تو باز آمده؟ خرا را رو تا پیش شیر پاره پاره کردشان شیر دلیر تش نشد از کوششان سلطان دد رفت سوی چشمه تا آب خرد رو به خرد آن جگر بند و دلش آن زمان چون فرصته شد حاصلش شیر چون واگشت از چشمه بخر جوست در خر دل نه دل بود نه جگر گفت روبه را جگر کو دل چه شد که نباشد جانور را زیندو بود گفت گربودی ورا دل یا جگر کی بدین آمده بار دیگر؟ آن قیامت دیده بود و راست خیز وان کوه افتادن و حول و گریز گرجگر بودی ورا یا دل بودی بار دیگر کی بره تو آمده چون نباشد نور دل دل نیست آن چون نباشد روح جز گل نیست آن آن زجاج کو ندارد نور جان بول قاروره است قندیلش مخان نور مسباح است داد زلجلال صنعت خلق است آن چیش و سفال لاجرم در ظرف باشد اعتداد. در لحبها نبود الا اتحاد نور شش قندیل چون آمیختند نیست اندر نورشان عداد و چند آن جهود از زرفها مشرک شده است نور دید آن مؤمن و مدرک شده است چون نظر بر ظرف افتد روح را پس بیند شیس را و نوح را چونکه آبش هست جو خود آن بود آدمی آن است کورا جان بود این نمردانند اینها صورتند مرده نانند و کشتی شهبت اند. حکایت آن راهب که روز با چراغ می گشت در میان بازار از سر حالی که او را بود. آن یکی با شم برمیگشت، روز گرد بازاری دلش پر عشق و سوز بلفزول گفت او را کی فلان هین چه می جویی به سوی هر دکان این چه می گردی تو جویان با چراغ در میان روز روشن چیست لاغ گفت می جویم به هر سو آدمی که بود هی حی از حیات آندمی هست مردی گفت این بازار پر مردمانند آخری دانای هر گفت خواهم مرد بر جاده دره در ره خشم و به هنگام شره وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو، طالب مرد دوانم، کو ب کو. کو در این دو حال، مرد در جهان، تا فدای او کنم امروز، جان. گفت، نادر چیز می جویی ولیک، غافل از حکم و قذایی بین نیک. ناظر فرعی، ز اصلی بیخبر، فر مایی، اصل احکام قدر چرخ گردان را قضا گمره کند، صد اتارد را قضا ابله کند تنگ گرداند، جهان چاره را آب گرداند حدید و خاره را. ای قرار داده ره را گام گام. خام خامی خام خامی خام خام. چون بدیدی گردش سنگاسیا، آب جو را هم ببین آخر بیا. خاک را دیدی برآمد در هوا در میان خاک بنگر باد را دیگه های فکر می بینی به جوش اندر آتش هم نظر می کن به هوش گفت حق ایوب را در مکرمت من به هر مویید سبر دادمت. هین به صبر خود مکن چندین نظر. صبر دیدی صبر دادن را نگر. چند بینی گردش دولاب را سر برون کن هم ببین تیز آب را. تو همه گویی که می بینم ولیک دید آن را بس علامت هاست نیک. گردش کف را چو دیدی مختصر، حیرتت باید و با دریا در نگر. آن که کف را دید سرگویان بود و آن که دریا دید او حیران بود. آن که کف را دید نیت ها کند و که دریا دید دل دریا کند. آن که کف ها دید باشد در شمار و که دریا دید شد بی اختیار. آن که او کف دید در گردش بود. وان که در دید او به غش بود. دعوت کردن مسلمان مغرا مرموغی را گفت مرد که فلان هین مسلمان شو بباش از مؤمنان گفت اگر خواهد خدا مؤمن شوم ور فضایت فضل هم موقن شوم گفت میخواهد خدا ایمان تو تا رهد از دست دوزخ جان تو لیک نفس نحس و آن شیطان زشت می کشندت سوی کفران و کنشت گفت ای منصف چو ایشان غالبند یار او باشم که باشد زرمند یار آن تانم بودن کو غالب است آن طرف افتم که غالب جاذب است چون خدا میخواست از من صدق زافت خواست او چه سود چون پیشش نرفت نفس و شیطان خواست خود را پیش برد وان عنایت قهر گشت و خرد و مرد تو یکی قصر و سرای ساختی اندر و صد نقش خوش افراختی خواستی مسجد بود آن جای خیر دیگر آمد مران را ساخت دیر یا تو بافیدی یکی کرباس تا خوش بسازی بهر پوشیدن قبا تو قبا می خواستی خسم از نبرد رغم تو کرباس را شلوار کرده، چاره کرباس چه بود جان من جز زبون رای آن غالب شدن او زبون شد جرم این کرباس چیست آنکه او مغلوب غالب نیست کیست چون کسی بی او بروی براند، خاربن در ملک و خانه او نشاند، صاحب خانه بدین خاری بود، که چونین بروی خلاقت می رود. هم خلق گردم، من ار تازه و نوم. چون که یار اینچنین خار شوم چون که خواه نفس آمد مستعان، تسخر آمد عیش شا الله کان. من اگر ننگ مغان یا کافرم، آنیم که بر خدا این زن برم، که کسی ناخواه او و رغم او گرددن در ملکت او حاکم جو. ملکت او را فرو گیرد چنین که نیارد دم زدن دم آفرین. دفع او میخواهد خواهد و می بایدش دیو هر دم غصه می افزایدش. بنده این دیو می باید شدن چونکه غالب اوست در هر انجمن تا مبادا کین کشد شیطان ز پس چه دستم گیرد آنجا ظلمنن آن آنکه او خواهد مراد او شود از که کار من دگر نیکو شود مصاله شیطان بر در رحمان باشا لله عیش شا الله و کان، حاکم آمد در مکان و لا مکان. هیچ کس در ملک او بی امر او، در نیف زاید سر یک تای مو. ملک ملک اوست، فرمان آن او. کمترین سگ بر در آن شیطان او. ترکمان را گر سگ باشد بدر، بر درش بنهاده باشد رو و سر. کودکان خانه دمش می کشند، در دست طفلان خارمند. باز اگر بیگانه معبر کند، حمله وی همچو شیر نر کند. که اشده او علال کفار شد، با ولی گل، با عدو چون خار شد. زاب تتماجه که دادش ترکمان آن چنان وافی شده است و پاسبان پس سگ شیطان که حق هستش کند اندر او صد فکرت و هیلت تنند آبروها را غذای او کند تا برد او آبروی نیکمند آب تتماج است آب روی آم که سگ شیطان از آن یابد تعام بر در خرگاه قدرت جان او چون نباشد حکم را قربان بگو گله گله از مرید و از مرید چون سگ باست، زراعی بلوسید. بردر کهف اولوهیت چو سگ، زره زره امرجو بر جست رگ. ای سگ دیو، امتحان می کن تا چون در این ره مینهندین خلق پا. حمله می کن، من می کن، تا که باشد ماده اندر صدق و نر پس اعوز از بحر چه باشد چ سگ گشته باشد از ترفع تیز تگ این اعوزان است کی ترک خطا بانگ برزن بر سگد ره برگشا، تا بیایم بر در خرگاه تو، حاجت خواهم ز جود و جاه تو. چون که ترک از سطوت سگ عاجز است، این اعوز و این فغان ناجاویز است. ترک هم گوید اعوز از سگ که من هم ز سگ درمانده ام اندر وطن تو یاری بر این در آمدن من نمیارم ز در بیرون شدن خاک اکنون بر سر ترک و قنق که یکی سگ هر دو را بندد، آنق. هاشل الله ترک بانگ برزند، سگ چه باشد، شیر نر خون قی کند. ای که خود را شیر یزدان خانده ای، سال ها شد با سگ در ای. چون کند این سگ برای تو شکار، چون شکار سگ شدستی آشکار پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تحییه و اجرا کردند.